الحمدلله علیه برای دلیل در بحث نهایی. متعرض کلمات مرمون شیخ ادسالله نسته رسیدیم در این چاپی که در دست من هست سی سد در جلده اول این چاپی که هست از عبارت سوال نمو کرده از کنم عبارت سهال ها آجازه هم بیادی. اما این شده داره یه تكلم خلف انسان مصدود به ما یقوم مهم این به ما این شو رو چاپ کرده اما در کتاب لسانه عرب او بما یقوله به نظر این درست تر میاد چون من عبارت خوندم چون در ضرورت الحدیث نبر از النبی این ظاهرا مرادش حمیزه باشه و این مناسب تر با اوه با به هر حال مرحوم میشک خود نسخهش اینطور بوده خود نسخه خودتون فرمودن و ظاهره او از تکلم به کلامه از تکلم به کلام ایشون استدهای این معنی رو کردن و که اونی که من به ذهنم میاد جور یه بار معنی بشه عبارت اصحاب و همون جوری سید, سید, سید قبل ما از کرد چون میخواییم باشید وقت جمع بکنیم برکی کلام بعض من قاره و اسرانا اندل اجما ول اخبار متطابقان الاند حقیقتل غیبه اندل یکره و غیره دماغ اهل لوسمه هم از کردم این اجماع و اخبار همون مشکلی بود که ایشون داره ایشون نور کردن از مقابله البته در این حاشی اشتماع شده در مقابله قائلی به احتمال میدنشون ایشون یه مقداری مطالبی رو که نقل میکنن گاهی از این چیزهایی که نکاتلتی بیست این کتاب بیست که به نظر میگه لده چاپ شده چیه اسبال شباه هدن چیه مال حسند سر جفر کاشوکتا برا؟ انوار انوار و فقه هست؟ نمیتونم شهر اسم به هر حالان به نظرم یه شهرش چاپ شده انوار و, انوار و احتمال میدن یه از اونجا از هاشه مرحوم خودشی جعفر هاشه شهر جعفر جلیه که چاپ شده مرحوم شهر جعفر کبیر هاشهی داره بر قواهد علامه انصافه هم خیلی فواهد داره جلیه که چاپ شده و انصافا میتونیم اینقدر بگیم که شاید یکی از نقاط رئیسی نقطه اثر باشه حساب بکنید در بحثای مکاسب خیلی ذوقیات و به اصطلاح ابواب باز جدیدی رو باز شرطی منتهي شده دهیم مثل خود مکاسب شهر حسانی انصافا بله اون انوار انصافا کتابی داره ما را دا شهر حسن کاشو شهر پسر شیلع بلکه كلام بعض منقارا و عصرنا البته ایشون چون از این وقتی که این کتاب چاپ شده نسخه قوال... چاپ نشده بود از نسخه خطی نقوم میکنه گابه در هاشهش اما اخیار جلده برشتاب خیلی کتاب خیلی است، خیلی زرافت ها و لطافت ها داره انسان. خود انبارالفقاهر من از سابق و از نسخهی از داشتم ازشی مقدر دیدم اون هم خیلی دقیقه اصلا معروفه که شیف نازیگ سن مثلا 50 خورده ایداش داشت و اون وقت کاملا دیگه شیخ پخته بود درس ایشون میرفت درس مرحوم شیخ حسنه کارش رو گذاستم اما ل اجماع و اخبار بواسطه ها وقتی اون دفتر کنید وجه کار رو مثلا اجماع و اخبار بردیم حالا من میخوام وضع کار رو روشن بشه مرحوم آیه خوی اخبار رو رد کردن به خاطر اینکه ضعیفه اجماع هم که ایشون دیگه قائل نیستن که شهرت جاب یعنی اون چیزی که این شون در اینجا، جا نحوه تغییری که مثلا ست سال بعد از این آقا پیش میاد این صورت میشه متطابقان علا هم نحایی و ترغیبه همین یک کرالغیر به ما یک رحل و سمعه و لکه انصافا اگر ما بخواییم باز دقیقتر بگیم برپرزم رو باز قبول بکنیم ظاهرم ببانید که ما رفتیم بهتره انیز کاره قیوبه خب بعض قیوبی اون به کلام یقوم مهور و سمعه این دوتا اون بعض قیوبی رو بذاریم قرفی به کلام یقوم مهور و سمعه اون رو بذاریم شرعی و فعبدی که شارع فرموده این شاید بهتر باشه منحیستد مجموع اگر بنابش اخبار رو قبول بکنیم و ضعف شمان جبر بدونیم این معنا بهتره بلی اینکه رو که به نخصی نفس، نفسی هی بدنی دینی، دنیا، امایت علمو بیهیم این از اشیا حتی اگه خانه شو یک جوری بگیه که ناراحت میشه که اصلا داخل خانه یک جور خاصی اصلا همم جگیز اتاقه هم جگیز میزن توازید اینه نعقی بکنه کسی ناراحت میشه ایچون گفته این هم مشهول غیبت میشه و ظاهره و رو ارادت و ایزن این کلام بردشون میفرموید که و ظاهره و رو ایزن ارادت کلام المخبول از کرد. اگر ما باشیم و ادعای احتمالات هست همینطور که اون روز کلامی که انسان یقوم محول و ناراحت بشه حالا درست این آقایی دیور فرموده ما که مقاید به کلامات این آقایی اما اگر ما باشیم و کلام رسول الله سه جور میشه احتمال داد یکی این که خود کلام یک ره یعنی مطلبی که گفته شده یکی یک راهو اصلا گفتنش رو ند مطلب رو اصلا اینکه گفته بشه ناراحته یکی این که به این کیفیت گفته بشه ناراحت احتمال دادیم که حدیث مبارک شامل هر بشه طبعاً اگر شک بکنیم قادر متعقل مطلبه یعنی اگه شک بکنیم همونشون فرودن اراده تو الکلام المذکور مطلبی که دوست داره لکی هر کدیم احتمال میدیم تو بحث غیبت ما مراجعه به اساطر احتیاط رو نه اساطر برامه توضیحاتش گذشت. چون این همه روایات تحکیب در باب خیلی بزرد یکیوه با حد با این یک و لحمه میتن اینها شاید مثلا اختضا بکنه که ما تو مقامه مثلا استظهار بگیم هر درست نیست نه یک ره ذکر این مطلب، اونم درست نیست نه یک ره جایی که یک ره و خود مطلب، اونم درست نیست جانوی که یک کیفیت بیان اون هم درست نیست که احتمال دادیم مورد روایت آرشه که پیران بخونه افتبتیه ها بیشتر ناظر باشه یعنی با یک کیفیت زشکی اون صفت کتاری قده هونو بیان کرد این رو پیران بخونه تو اون چون این اون بفهمه با این یا مثلا لال تو جلوه اون این کار انجام نمیده یا اون بفهمه تو پشت سر او با این ترکیب انجام دادی یه احتیاط در ماما استظهار استفاده کنی یا عمل نه دیگه احتیاط شد برمید ماما عمل استظهار انصافش بیشتر میخوری که خود مطلب وقت بعدشم اون رو باید هم از جا باید خود که اون رو باید هم صدر صحیح نیست و در طرق اما نیمه در طرق اهل سنت اثبات هم نشده که اون اینقدر صحیح باشه که ایمه اون رو قبول کردم این هم روشن نیست در کلمات سنت هم مثلا به بعضی از بخورتون اولیاء و زاهد و عباد نسبت دادن که اگر مثلا این کلامی رو بگید ولو کیفیتش مورد نظر نباشید آقیبت از انجام ندید یعنی به معروفشون نسبت داده نشده اصافا اگر ما بخویم باشیم و زواهر خود روایت اکمالا شون نمیتونه بگیم و زواهر فتا بیشتر نظر و مطلبه بیشتر نظر و مطلب و کلامه انصافش و چه که قاعده رو هم فکر استاد کنیم شکل کنیم پردامون تایقت در وقیه برای عجیب میکنیم ولکه نه کردم احتمال داره خود من هم اعتقاد چون در مسئله اطلاق و علماء اطلاق همیشه طرف بالا رو میگنم اون چون فوقهای الله فوق طرف پردامون که اکمن میگه کناه اون طرف انصافش این احتمال که ما بریم به طرف اون بالا و احترامند کلام رسولله و مخصر اگر احتمال اسناد اون حدیث در درست باشه انصافش اختیزا میکنه که هر سه محل داخل در قیبت بشن هم جایی که اصل ذکر یک رفا اصل ذکر جایی که یک رفا مذکور رو جایی که یک رفا کیفی از ذکر هی از ذکر این ستا با همدیده قیبت بشن و قانش شهید و ساهی. راهی رو که اصولاً من سدناتون عرض بکنم چون این خیلی مهمه در مسائل فقی مردم مثل شیخ انساری خط فکری هستن در مسائل وقتی وارد میشن کلمات بزرگان رو زیاد مورد برای قرار میدن واسه علامه در یک کتابیش اینجوری و مخصوصاً هم وقتی مخواهد سعی بکنن که نظرات رو با هم نزدیک بکنن یه متادی که علامه گو با متادی میشه ایشان گو با متادی میشه افراد گووند که محقق مثلا کلکی گو مال قبل و بعد و قرن پنجم و هفتم هشتم و دهم همرو با هم نزدیک بکنن سعیشون این بوده که مثلا وقتی بزرگان هستن مثل علامه مثل شهید مثل جای اول ثانی محقق ای کلمات اینها رو توجیه بکنن این یک راهیه و کلمات اینا نقل بکنن و گذار میشه در اون استنتاج مرحوم استاد در این را اصلا تونی خطا نبود <تصفيق> به قدر فرمه نه خیلی که شما در که بحثتون چه کار مهم بکنید یه شوخی بود و از یک بزرگانتون از فوت می فهمده فکر کرده در جواهر مثلا میگه در این مطلب ستا حدیث صحیح هست ولی اینها لا طباب محتمل کلام الالامه به در محتمل حدیث رو در محتمل کلام الالامه این, این یک راهی بوده اصل مطلب درسته ما بیریم دردی که خود خود شده صاحبی از جلو شده لیکن این بوده مثلا شما یاد کنید عبارت سه ها آورده عبارت م... اه... کلام من برز من قاره برز من. شما در نحوه استدلال مرحوم استاد اینو اصلا نمی‌دونی. این یه قَرَش دیگه به هر چون من میخوام اضافه بر... مطلب اون کیفیت و روش و ذرافطای فنی این دو تا راهه. یک راه مثل علمی شیعه مر... مرحوم چتانساری زمانی یه زمانیش اصولا در فلسفی همینطوره. جوارمون اونجا. حالا بود در این کلام که چیز نکرده. که سطر رو در مقابل محتوای کلام علامه رجبولی. به این درجه نه اما به حال همینطوره. مثلا کلمات علامه که مثلا در کتاب متعدد داره جای متعدد و که پید استدلال داره خیلی اعنایت خاصی داره علامه که دماغار این خوب دقت به اکسی این ها مروم و استاد مثلا توی خطا نبودن تقریبا حالا مثلا اگه کلامی ها نبودن بشه اونو پتواب مثلا علامه اصابی این شیخ خطا بود در حد این و ما مثلا کلامش این طور است و, و خوبشون مراد ایشان چون ماذ علامه هر چیز هستیاله برای ما خیلی تاثیرگذار نیست ما به دنبال استزهار از روایاتی یعنی ایشون مرحوم آلوکویی اینطور فکر میکردن که مثلا الان ما هستیمون روایت از ازش چه استفاده می‌کنه حالا علاوه چه استفاده کرده اونا خیلی در نیست البته <تص> اخیراً مخصوصاً در دست مرحوم های اخیران بیمان و برد مرحوم های برو جبی خیلی راهی شده که در مسئله یاد کلمات علامه رو شد کم پرگیرم اما کلمات و رو بیشتر رو بیشر میرن شده که مثلا اضافه بر کلمات مثل علامه یک اعتناعی خاصیشون خدای برو جبی عرض کردن و توضیحاتشون بادن که ایشون حتی نهاره که گاهی اوقات انسان از یک فتوایی که بین قدم هست تازه سان ممکن است قاعده با بود چون اینو متون روایت میآورده و برای فتاوای قدما ایشان عرضش خاصی برقرار بود که erk کردند این مطلبی رو که ایشون فرض دادن ارزش عرض. ارزش شدیدی رو که برای کلمات قدما توجهی که من دیدم حالا ممکن است قبل از ما هم افراد گفته باشن ببین تعبیر قدما و استرایه فتاوای قدما به خصوص شد مرحوم محقق ار هلی در محتوا ما عمل بهل حل اصحاب داره اونوان اصحاب اما عنوان قدم و اگر پتواهی بین قدم مشهور بود از خیلی تبدیلیشان این بود از خیلی اجماعات بهتره یا اونو ما قبول بکنیم اصلا شورت بین قدم رو با امانه کجت شرقی قبول بکنیم تا جایی که من دم در کلمات مرمون محقق استرابادی آمده محدث استرابادی در فواهد مدنیه این آی دیه. این مطلب مال برو جهدیه چون بحث اجماع رو رد میکنه و اجماع میگه حجت نیست بعد میگه بعد دو مورد اجماع حجت یکی جایی که قدما ی اصحاب تا بدن اون دو ایشون قریضه به این عنوان قدما ی اصحاب نه ماعن عنوان عنوانی که منظور محقق حیدری داد ماعن بهل اصحاب که منظور محقق مدرس استرابادی داره قدما ی اصحاب این عنوان که کلمات های برو آمده بیشش میشه مخصوص خب اون عنوان قدم و این که قدم ها یک عرضش خاصی دارن این از حدود قرمه یازده در اصطلاحات ما وارد شده و این راه دیگری غیر از این راه شیخ پس یک راه شیخ انساری و سابجواهی بود که خیلی رو کلمات علامه و جمحق رسانی و پردویلی و اینها خیلی بسا کار میکنند یک راه یه بود که مرموم استاد بود که رویش کنوش کار نمیکنه یه راهی هم بود که بوی عبارات و قدم آخری ترکیز میشه و ما عرض کردیم صحیح در این مقام اون یک تسلسل تاریخی خودش داره اون تسلسل رو بعد حفظ بکنیم این در اول روایات آقا روایات نبویه در اول و روایات نبویه است بعد مثلا کلمات اخری بیته بعد این در به خصوص در احل سنت این نیست انتقال از نصوص به فتاواست ما کلمات و رو که برام آقای بروجیدی گفتن رو اینجا گذاشتیم انتقال از نصوص به فتاوا که اولش هم پر حضب علم و کلم داریم که هرزاست پر حضب رساله علی بن بابی هست پر حضب کتب صدوق هست و حالا باید تغییر کم و زیادی شیخ مفید ایشیخ مقید هست نهایشیخ دوتی به اصطلاح سعی ما همیشه اینه که اون جنبه‌هایی هایی که مثلا یک عنوان رو به شعن بود بدیم این رو انجام ندیم یک سیر محین خودش نگاه آفاقی نه افاقی یه نگاهی از بالا یه افق، آفاق کلی مسئله رو نگاه کردن و هر بحثی جایگاه خودش رو پیدا بکنن نفس بکنید مثلا ما کلام فقورزا یا صدور, صدور پدر یا صدور, صدور پسر این رو که تو جایگاه خودش که مرحله انتقال از نصوص به است. پس این کاری آل بروجیدی پرمیدن که متعرض اینا ها بشیم خوبه و که این باید اضافه بشه. و اون اینکه در این مرحله انتقال از نصوص به فتاوا در نظر بگیریم که مثلا ما مثلا برامون روشن شد که در مسئله سه تاری باید داری واسه زراره و محمد موسلم مثلا مثلا خط صدوق و خط کلیلی و اینها رف اما برها خط شیط مفید رستم روات زورا محمد مسیح ببینید یعنی ما این مرحله رو اضافه به منجرد که کلمات و ها رو بیاریم اکتفا مکنیم کلمات و رو ها رو اون رابطه علمی شو واده هم حفظ کنیم مثلا اگر صدوه اینجا, اینجا اینجور گفته ناظر روات زوره هست ففورزا اینجور گفته نازر روات حسین سعیل صدوه اینجور گفته نازر ر یعنی برسته و هر کدر جای خودش رو سعی نکنید دانه دانه بررسی بکنید و بیانی اوموردن کافی نیست. اومردن کلمات قدم کافی نیست. اون کلمات باید تحلیل بشه و جایگاه مناسب خودش. و لذا مثلا این میاد تا فرس این زمانه مثل شیخ توصی بعد شیخ توسید مثل فرس ابن ادریس چون خبر بازد رو بود جد نمیدونه مثلا ابن رو اجمالا بکنیم تعریف شخصیتی بکنیم و فتاها در فتح هم میاد میاد تا زمان محقق محقق چیکار میکنه بعدیاش بیشتر رو قاعده است. یا ترجیح دادن یا اوتا سهر سعی یا اوتا خودما یعنی بعدیها تقریبا دیگه برای ما واضحه خیلی نیاز به کلمات مثلا شهید سادی و جواهر و دیگه ها نداریم چرا مزیدی هستن مخلوطی هستن. یعنی یک چیزی یک نواخی نیست لذا به ذهن ما ما میتوانیم به این تفکر ما هر مسئله رو در دنیای فقرشیه در همون جایگاه مناسب خودش را داریم تو همین تعریف قیبت انصافا وقتی برگردیم به مسادر اولیه مسادر اولیه خیلی صحیح نداریم به معاییت کنیم سونیا دارن ما نداریم تو احادیث ما نداریم راست این اما بعد ها که میاد اعصاب ما تعصبشون به واضح کاملا واضه یعنی کاملا جا میفته. حالا اون بحث ارزیابی که قبول بکنیم یا قبول نکنیم با مجموعه شواهد قبول بکنن اون بحث نهایی است و قال از شیدستانی که کهون در ق در کشور ریوه رساله ایی از خصوص دی بعد نش شاقکن شده به ذهن من چاپ جدید نشده و بود در مجموعه آثر چ چاپ ب می قیبه. فی حال این قیبه ذکر الانسان حال قیبتی این حال قیبتی این از ماده قیبتی قیبتی بیده شد به بی ما یک ره نسبت روحلی این به ما یک ره رفتی تفسیر شهری چون از کردیم این نیست در تفسیر و عرفی کار به یک راه نداره شما ای به کسی بگید، بگیم یک راه، لا یک رح. عیب مسئول کسی رو بگیم غیبت این نقطه فنی بتا شخص مسئول باشه عیب هم مسئول باشه اینا رو ما از کلمه غیبت ماده شرعی داریم اما یذکروه به کلامه این رو از هیئت احسوال درآوردی خوب تحلیل شد هم لغویش تعریف کردیم اما یکر اهل سنن اما بعد تعبد روایت شیعه برمیاره ولذا غیبت در نظر عرفی ذکر انسان مسطور انسان غائب به عیب مسطور این معنای لغمی اون به ما یک رحلو و او این تفسیر شرعی این خلاصی فینتو شد اون یک رحلو و او اون در لغت گرفته در شده اون در شریعت گرفته شده. اما وجوده ای و اما این که پیغمبر دارن که بعدا در روایت ما آمده که غیبت اون سریرش باشه اگر نباشه بهتونه این هم تعوذ نیست خوب دقت بکنید این که در او باشه به شرطی در او باشه این تعوذ نیست مثلا اینکه مفهوم بهش میگیم اون حد و حدودش همو چن می‌کنه علاوه در, در کلمات ما آمده که پیغمبر فرموده امکانفی با غیبت ما لکن فی فته بهتونه نیستو لکن این نه به عنوان پیغمبر شعن شارعیت فرموده این توضیح و عرفیه چرا؟ این هم از ماده قیبت در آمده تقلید بکن چون شما میگه قیبت؟ قیبت این غایب غایب این چه این هست شما نمیبینی یعنی هست دیگه معدوب رو نمیگن غایب خوب بخیل <تصفح> اگر نباشه معدومه دیگه به معدوم نمیگن غایب این که شما میگید غایبه انسان غائب، با ای بقای، خود دقت کن. طبیعتا معناش یکی که هست. نه نشون خلاف از آن هست. خوابش نمی‌ماده. چیزی شبیه افت، افت کم در قرآن آمده، آن لذی تولّا کبران، اینا لذی جاوب الافت، عصمت زور هم در قرآن آمده، بوختان هم در قرآن آمده، افت کم در قرآن آمده، غیبت هم در قرآن آمده. اینها با هم دیگه از هر دو دقت بکنیم غیبت خود غیبت توش خوابیدی که اون عید باشه درسته چون غالب و این این از کجا در آمده شد این ما خبه به تعبد از سه این هر برد هست هم اما ما این رو به تعبد در نگه بردیم دقیق بکنیم این رو از هم مفتوب و ارزی از کجاش؟ از ماده یا یاد از ماده چون وقتی گفت غیبت یعنی چیزی که واقعه واقع غائب یعنی حست وجود داره شما نمی‌بینید این هستش واقعه اما اگر نباشه معدومه بحثی وقت نیست پس این, این درده درونی اون هم از روایت خودت فکر با اینکه در روایت اومده وا اینکه پیغمبر برمدار ما آمده فیل لکیکم فی فهو بحث و, و بهتاره و لکی به نظر ما این هم جز تعبدی نیست و از هیات هم در نیامده از مازده در آمده. از خود کلمه رائع در میاد که باید باشه دقیق کردیم؟ ما خیلی راحت چونست دقیق شد چون هم جرمه کلمات کردیم این کلم درسته این معنی لغوی درسته اون معنی که مثلا تقییه فرمده این معنی که شیخ خیلی راحت میشه با این ترتیبی که ما الان از کردیم شما احاطه فیدا کنیم و بعد نتیجه گیری کنی که این مطلب قبول هستاند یک کلمه نسبت و علیم ده فاسته انتقال زن نه یعدن احسن فی العرف یعنی ای بودن این مال تفسیر لغوی غیبته اما این که موجب ناراحتی او بشه این مال شرعیه که بگیم یک مطلبی و مثلا راضی نیست بگن مثلا تویشون مثلا مردم بگن ایشون یا خونه خرابو ساخته داره خاطر اساسه شرع مثلا یا توی یه در توالت و اساسو مثلا بدش نمیاد این مطلب رو بگه باشه کار بعدی بودی خونه کونه و شده ساخته شد. اون نه رو بگوییم که یه نامزدی بود. ولی که در آب نخست نبود. که با داخل نیست. انصافا کسی انتقام سام نه. تعدادی رو که دوستانی که کشوری بفرموده، ما به که اینا رو دیالی بگیم سری نیست نمی‌گریم. آره چه خورده؟ هر سالشون ما خیلی مغیر نشید که چی بو که خود ما معتقل هستی آرار خوبه لیکن در حد اون افق باز اون افق آم و اینکه که مثلا اینها متأثر بودن به چه زمینهی که از چه تحریفی این مطلب رو برداشتن بردن و یک خلال تحریف ما ادادو که را شخص اتفاد نظاهره که رو وجود آنستن مرهد به داره که این اشکال بارده اشکالشون من همون داخل رو به تعریف در شیل ایوان حیثو ادامون ناریبه حد ناریبه که بعض الاشخاص به اصطفات المعروفه بها ایشون رو داشتی بعضی اصطفال مثل احمرش احمرش که چشمش ناروحرکی داره احمر کسی که یک چشمه و نهوه ما البته او میبینو احمرش معروفه هم رو میبین که احمرش میگن حد از عبدالله همدانی از سوی ازمال هم است ستا من خیلی عزیز زمان هسته یه و خیلی عدیدزمز خود جزه اضیات رو می اون چیزان بر رویها سر. و از مین اول می یک چش این یک چش. چ گفته این و دفایشن شما دی در گفتن انبال قصد انتقاست خیلی خوب. و کهطور روی به هر حال ما به فنده خیلی آره خداد و منابش چش باشان رو بررسی میکنیم که آن مراجعه میفرند ما اون روح مکل رو خدمجم عرض میکنه و یا خود مجرد به یاد میگه که قصد انتقاد نمینه اصلا در واقع واصله این هست که قصد انتقاد ذکر نقیصه چیز, چیز دیگه‌یه موجبتون بذارید موجب ذکری و ماش اینی که زیادی میشه چرا قصد ما یا عدنخدا گفتم بذارید من دیگه وارد این بحثا نمیشم که دعواهای اصطلاحی بین دو تا فقيه بعد عیسی خودش میشه و اولا به ملاحظه معتقدم از اخبار و کلمات عزیاب، بناآن علاوه از جوی کراهه، اهل کلام مذکوره به لا اهل واس معتقدم از آن ریبر نیابد. انسان کلام من عیسی او به. بهتری بود همه راهی که ما رفتیم، میتون که شاند گوشت و احتماله، اون از متقانش خود کلام ای باشه تا متقان. ان ما به اظهار عیب المسکور و این لم يحصد انتباس این هم راج نیست شیخ شیعه از نظر ما درست است اظهار عیب مسکور همان غیبت عرفی همون صد آیه فهمیده میشه لا و لا یکا بعضی اون بعد قصد انتباس در شرط نیست و ان ما به, به مستور انتباس به عیب خیرا مسکور یا انتباسش کنه به عیبی که ظاهره این ما به اصل متکلم یا مسکله قصد میکنه قصد درکی نیست یعنی مطلب نه او بکنه به کومنل کلام بنفسی منفصلنده بود که ما اذا شخصه شده به الفاظ مشترک به جنس به الفاظ مشترک به آیا حالا راه درستش هم بود که ارسل نه لو او که اثر کراهه الی البسطی الذي یسند الى الانسان تعین اراذته کراهت ظهورها او مراد این است که خود کلام رو راضی نیست یا ظهور و گفتنش و یکتر شبه قسم اول به هم مکان اضحام لحمه المسود دیدید شیخ مختلف کرده شالی از استرامیست راه فرمی همون رایی که ما ارز کردیم گاهی اوقات از خود ذهب ناراحته به اضحام گاهی اوقات از کلام و مضمون ناراحته گاهی از کیفیت ذهب ناراحته اما به این کیفیت نه. بعد اشون می که که اراده کراهت ظهور باشه و یا ایه لها بل احتبار که خود ظهور باشه بلی یا اینه های اخبار رو مستدیزه از داله احتبار کن محبول مستورن غیر منکشه مثل قولی عدلسان عدل عدل که ما رو آن حیاشی بسند یا عدلسان عدلسان و تا که عقیق مافی به ما قد سطره الله ماله درسته این معنی ارفی قیبته به معنی اورقیه و احتمالاً اگر از سنی دواد از منتزرات عبدالله الله مسیح اونم که دیگه باشه اون عبدالله الرحمن سیابه باشه شبیه بحثی بود شب یونه به هر حال فعلا حجتی نداره احتمال داره که این دوات بیشتر ناظر به انواعش باشه حتی اگر یک امر تخیلی باشه زیر دغدغش خدا سارا والله تو اینه اعلام بکنه اون دوات شاید ناظر به باشه برای واسط داوود بن سرحان اینو عرض کردم مشکلی وجود معلم محمد در سند حدیث در کافی اومده ان درویه ال کافی سئل فی عبد الله رساجی و قال له انک هو لاثق في دينه ما لم یغعن البته این مطلب و از خوی توی خوندی که ایشون فهمیدن لازمی نباشه فهمیدن که ریبه وا در امر دینی باشه وقتی فهمیدن نه مثبت هست صحیح دینه توسطی مثلاً که بیفون پارندن، انتقال فیض احیی پیدا نیمادامی آمد. این اسلام چیز نداره که واسه استان یعنی ماشینی که در دنیا نه. اون مقداری که ما اون اصول کردند، یعنی ما به حساب قوانین علمی در باب مصوب مقالات از این تغییر نمیفهمیم که هیبت مال دین آد باشه. همون راهی پا رفتن که پاک وی در جواب کردن حدیثان دوست. و من سابقاً کراراً نکتهی رو ارز کردم نه این نکته رو خیلی ارز کردیم ببینید ما برای محرومه یک کلام فقط به همون جنبه های لحظی یا اصلاحات لحظی که خودمون تصور میکنیم میشه مراجعه کرد این باید شواهد کارییش هم دیده بشه خود من هم سابقاً عقیدن در همین روایت همون تاکویی فرمدن بعد مراجعه کردم دیگه چون بحث سودانش شد نه دیدم در کتاب قرطبی یا نه نهر کرده از بعضی فقهای های و گفته او قائل بوده که غیبت فقط اختصاص به امر دینی داره غیر دینی نیست اینو داره چون این قول در میان اهل سنت هست این به در نقیقت معارض میشه این نیست سال کوی فرمده اگر ما به لحاظ لفظیش نگاه همچون سال کویی فردا اما به لحاظ م... نگاه کن کسی خوششیدن نیست من بیمارم منم اصلاً تلویزیون پریکردم. از بلاهازی که خواه الداره که داره یا خواه ارشنه که ریبات باید فقط عمر دیم بودم تا بیش از آن بوده نامزد بودم. در امور دنیایی دیگه ریبات نیست نه که از نیست چون چه چیزی لایش دارم من این لعنت نه شد نگاه کنم به دیکتات آیا حالا زمان مسافر خودی این زمین آش شده؟ به هر حال اگر این خود چیزی باشه یعنی همچه وایکتری باشه. ریبا واقع تعیید می‌زنه. ریبا مطلق نیست، مسطر نیست. هم و توسط علیه اذن قدس سره الله علیه لم یقم علیه هیچ احد. این دلیلشم قریبه همین. در هر حال اگر این رو شما بعد از ذوال قبول بکنید با اون که اگر اون جدی درست که به اینواز معنا بکنید، قید فقط اختصاص امور دینی این کلیه علیه مشدده. قطعاً فتوای اصحاب ما بر این نیست. این از جز قطعی است. و اگر جایی هم گربا بایدگی کردیم که رو کنه به علمها الى احلا برموی هم دیگه برمویی که که نداره تقول لحشی که بیدیم نیم نمیم که تقدر اگر نواه اگر تحقیق ثابت بشه که قولی بوده و ثابت بشه قرن دوم زمان ما مصادق بوده این مشیر که درده کنیم و روایت عبان ان رجل لا نعلمه الا یهی الازره قال قاضی عبار حسن علیه السلام من ذکر رجل من خلیفی به ما وفی من ما عرفه و ناس لم و, و من ذکر من خلیفی به ما وفی من ما لا عرفه و ناس فقدر طابه بود این کلامی که از امام نوسم جعب هم شده این انصافا همونیست که در مفهوم عرفی قیبت بسید و من دکر او به مالی سپید را از دردارم این تعبده به ما یک و سمعه کش نداره این فقط همون امر عرفی قیبته که اگر عمری مستور باشه و باشه مردم بدانن این قیبت نیست مردم ندارن قیبته این دوباره هم اجمالا خوبه لیکن به نظر ما محکوم و اروفی قیبنده و لایقصا بعضا کن بعضا همین از اجمالی میشه اما حالا من الان اشاره اجمالی بکنم فرده ایشالله این دوباره سابقه من خوندیم و ارز کردیم سابقه در تحلیل رو چون یهیل از رفت در بعض زرایت مقروم شده به مثل زراره مثلا زراره و عبیبسیر و یهیل از رفت ارز کردیم میشونداده میشه که یه بوده. این در کتاب رجال امام بر موجن و غیرش نوشتن یه یه از دو نفرند یه یه محسان رو از وقت یه عبدالرحمن حالا از وقت که نجاشی این دومی رو توصیح کرده یه یه محسان نشده دیگه آین بحثی کردم من اون بحث تفصیل بحث رجالی رو جاش اینجا مناسیم چون طول رو میکشه که دو روز باز آه باصو کنیم دست داریم تا <تصفح> خیلی چون بعد از نکات لطیف است اونجا عرض میکنی ای نکاتش اینه که مرحوم نجاشی یحیی بن حسان رو نآورده. چرا یحیی بن عبدالرحمن رو؟ و در مشیخیه مرحوم شیخ صدوق همون فی علی یحیی الازرع و قدوی سروج انقول علی ان یحیی بن حسان الازرع. اولش یحیی الازرع گفته بعد یحیی بن حسان الازرع آقای اون از این فهمیدن که در نظر صدوق یحیل ازرق اون یحیل احسانه و مرگوم نجاش یحیی یحیل احسان رو دکت نکرده. نظام محل کلام شده که یحیل ازرق اون ابن حسانه که صدوق فهمیده یا ابن عبدالرحمنه که مرگوم نجاشی اغرده. و یحیی یحیل احسان در کتابه رجالی توصیق نشده اسمش آمده در رجال شهر توصیق اما توصیق نشد ای هر نرسا و لذا گفتن اگه در روایت یحیل ازور یحی بیاد مردد بین دو نفره و لذا توسیدش موشه لیکن چون نجاشی عبدالرحمن رو کرده مرهوم استاد یه قاعدهی داره ای که اگر نجاشی کسی بود این مشهور اینه ایشون میتونه که مشهور از یحیل ازور همین خب که مطلب شدید این مسئله بعد یکی یکی از محل بررسی قرار بگیره نسبت بین کلام صدوق با کلام نجاشی و کلام شیخ در فهرست شیخ در رجال در فهرست اینا رو چکار باز و آیا این مطلب که اگر ما دو نفر داشتیم نجاشی یک نفر مثلا اصلا یه یه عزت دوتو داریم نجاشی یه عبدالرخمان اوورده حسانه اوورده بگیم در کتاب رمایات در رباراتی که داریم یحیل از وقت به همینی بخاری که نجوشی گفته چون وقتی نجوشی کسی بخاره علاوه اینکه این شخص مشهوره یحیل از وقت مشهوره همون یحیل نبدالرحمنه این کلمه هستو من فردای توضیحی ده دیگه این روزی میرسه نخطوان شده یه توضیحی میری که هم به درب کلیات بخشی رجالی بخاره هم درمانه همیتید سلام آقا آقا در اینطور نمیشه